اول به خودم چو آشنا می کردی، ز خودم چرا جدا می کردی؟ چون ترک منت نبود از روز نخوست، سرگشته به عالمم چرا می کردی؟ ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره را به سر رسیدن بودی، کاش از پی صد هزار سال از دل خاک، چون سبز امید نودمیدن بودی؟ از دفتر عشق میگشودم فالی ناگاه ز سوز سینه صاحبحالی میگفت خوشا کسی که در خانه او یاریست چو ماهی و شبی چون سالی از آمدن بهار و از رفتن دی اوراق وجود ما همی گردد تی میخور مخوراندوه که گفته است تکیم، غمهای جهان چو زهر و تریا کش می